خواب سفید <متلاح> نویسنده و کارگردان حمید جبلی تهیه کننده مجید مدرسی بازیگران حمید جبدی به خاطر همین شاعر میگه بدون عشق نمیشه زندگی کرد الیزابت امینی یه لباس میدم مثلا خودش بدوزه ببینیم چی میشه دیگه میتونی من هم, هم پارچه کنیم بر... سارا, سارا کریمی خیلی دلم میخواد سوار دوچرخه بشن ولن شو برن شو با هم اینجا بریم یوسف یوسف پشندی تنها بندش بالا با اتوبوس قلبه بکن تا تنهایی در موسیقی پیروز ارجمند مردی توی قبرستان کوچیکی که کنار قبل نشسته و داره با مرده که مادرشه درد دل میکنه یه دوچرخم ورتر قبر دیده میشه مرد اسمش رزاست آقا رزا آقا رزای ای اینه که زردبینی گنده رو چشمشی سلام حالت خوبه؟ اما نصرت میگفت خاک سرده مهر مرده از دل آدم میره بیرون اما از دل من نرفت بدتر, بدتر عاشقت شدم اینقدر شباز سرم کردم زیر لحاف و برات گریه کردم حالا که دارم پا به سن میذارم خواه بیشتر دلم وسط تنگ میشه آخه بچه که عقلش نمیرسه مادر کیه آدم وقتی بزرگ میشه تازه قدر مادر رو میدونه چون آدم تو وقل مادرش فقط تنها نیست. یادت خودت وقتی مریض می شدی تو رخته خواب میافتدی هی hey, مادرت تو صدا می کردی به حواست تو من باشه الان اگه بودی می صدامت به مشهد کیف کنی اونم با هواپیما یادت تو چه سرمایی من آوردی مشهد اگه بودی بهت طول میدادم تو مشت واسه خودت آجان سوارشی که از حرم تا مسافرخونه یخ نکنی آب بره تو کفشت انگوشگوچ کیپات و، و، و، یخ کنه تو مشت یه دختری تو مسافرخونه بود من دوستش داشتم دیشب یه خواب سفید دیدم تا حالا اصلا خواب سفید دیدی همه جا سفید بود مثل برف اما برف نبود مثل پشمک گرم بود بعد اون دختر خانومه که همیشه لباس سفید میپوشه اومد خونه ما اول اومد دست تو رو ماچ کرد بعد یه بولیز بافتنی سفید برات بافته بود و خودش تنت کرد تو دست کشیدی به لباسه گفتی به به چقدر قشنگه آفرین آقا رزا چه زن خوبی پیدا کردی خیلی قشنگه سلیقه داره دیگه من قصه تو رو نمیخورم که تنها موندی با این درد دل میکنی دیگه اون وقت حسلت سر نمیره سر و مادر باید با هم درد دل کنن که دق نکنن کاری نداری؟ خدافز با دست میکوبه رو قبل دوچنخه رو برمیدار و برامی افته بیدی کنار خونه به نزدیک قبلستونه یه دختر جوون داره روی دستمونه گل روزی میکنه سلام حالت خوبه؟ سلام علیکم آقراجم خوبی شما سلامت باشی تموم نشده؟ چرا؟ ای چه قشنگ شد حالا که قشنگ شد من حسابتو بگم چه ببین؟ به دختر پول میده مرش تو. دو تو مناشم مال دفع پیشه این دستماله سفارش کیه؟ سفارشی نیست مال خودمه خودم خانم یه دقیقه به چشمت استراحت بده چشمت خسته میشه چرا همش شما کار میکنی بخنی تو آقا رزا چایی کردم تازه درمه دست شما درد نکنه. خانم به این دخترت بگو که چشم آدم مثل چراغ قوه میمونه هرچی روشن بذاره باتریش تموم میشه دوچرخه نیستش که دینام داشته باشه واسه خودش کار بکنه درسته؟ بله درسته خب پس من رفتم بکنه خدا خدافر خیلی لباسش قشنگ شده دسته درد نکنه آقا ریزه بلند میشه میری لباس عروسو از روی دیوار برمیده یه میلی آهنی بلند رو که دو چرخه دوچرخه جادادی شده خدا خدافر میلنه رو پشت زینه دوشخی جا میده میشه مثل رختاویز آویز. عروس رو به اون عروسی میکنه و به راه دختر از پشت سر به اون مطمئن آقا رزا سواری دوشخی شده با لباس عروسی که پشت سرش باد میخوره از روی قبرا میگذره و بیاد بیره میرسه به محل سنگ تراشی آشیای نزدیک قبرستان حالا رستیدی توی خیابونه شهر نباسه هم همتا پشت آقا رزا داره پیچ و تاک آقا رزا در یه خونه داره زن زن. روی زنگ در نوشته مزون گلی. یکیس نایلون دست سلام خسته نباشی سلام آقار زهاله چطوره؟ سلامت داشتی اینا رو آوردم این توره رو من نتونستم بخونم شما چند متر نوشته بودی؟ دو متر میخواستم قیچی داری؟ دمه در آقارزه داری نوار توری رو با دست اندازی زن به آقارزه پول میده همراه با کیسه نایلون که لباس سفیدی اونه اه این بیا این مال شما این اینو بده به محسومه بگو از روی مدلش بدوزه بگو اینقدر خود کم و زیاد نکن چشم میدید؟ چش عجله چش داری پول نوار چقدر شد؟ اونم حالا میذارم به حساب زندر رو میبنده واقعارزه میره طرف دو چرخش لباس عروس همینطوری پشت سر آقا رزا داری تاب میخواه آقا فروشگاه که پشت ویترینش لباس عروسی قشنگی هست نگه میداری به دوچرخش میگه میگه میره پشت شیشه ویترین حتی اون مانکنی که صورت خیلی قشنگی داره و لباس عروس خیلی سلام. زیبایی تنشه میگه چه چپ چپ نگاه میکنی من که دنباله عشق و صفا نبودم که رفتم کار مردم را و شیشتم پاک میکنم اه. که جلو تو خوب ببینی من نبودم کسی به من تلفن نزد من که نمیتونم صبح تا شب بشینم پیش تو تکون نخورم خیلی خوب حالا بیا بیرون و قشنگ تماشا شیاهی نگاه نکنیم آقا ریزا لباس عروس به دست ورد فروشگا میشه میری پشت بارش بارش پیشخان کنار مهدی که منجاست میگم به ریزا وردتون بیار بزن تواجم بمونه من بعدم بارش. مسئله نیستش خواهد این فاکتوره اینم لیسته اینم نایت خانم بله الو ریزا اینها رو برجم کن با من بله برو اینها رو بچینش چه بله بله چاش رضا سنه عروسش زشته گل و تاجر چرش خدا به مدد حسین و جوان جوانی کوتوله‌ای که یجب شیرینی دستش وارد مغازیه میشن سلام علیکم آقای نجفی اهل شما چی شده شیرنی پخش می‌کنه آقای نجفی عروسی اکبر آقا مبارک باشه بفرمایید مبارک باشه اکبر چه زحمت کشیه گفتیم هر کسی هر چیزی داشته باشه به توان اشکومه که بکنه به ایشون میبارد میشه این شاله سمج. که همیشه بانی خیر باشی با. ما چقدر باید بدیم؟ هرچی دوست داری، هرچی عشقته بفرمی شاگرزت چقدر دست بدن؟ تو نمیخواد چی بدی؟ اشاره عرصی و جبران میکنیم بیا خود جنس هم که اومد مهلا شرمنده کرده، اقوان عجفی با بیژن قرار شده، بچینه. ها کش اشاره عرسی خودت بیا برمی. آقا زمین می با, با سرزنش با آقا ای مبارک. با مبارک. با دا... بیا برم آقا بیا بریم بیا آقا خدا افر آقا داری کفی از مجسمهای یکی از مجسم های کچولوی تضعیمی عوی سیداما دختر؟ ریزا ها باز گفت یکی از اقوام منش خانم یه دختر داره دختری خیلی خوبیه اگر تو این مسخره بازیاتو کنار بذاری یه شب دوتشون میکنم تو باقتم میگم بیان اینجا فقط درس نخونده از بچگی پیش مادرش کار میکرده محمود آقاجون جون یه دفعه بگو بی بیسواده دیگه نکه خودت پروپوسور و انیشتنی من اگه میخواستم از این زنا بگیرم که تا الان سیچل تا زن داشتم خودم آخه تو چه جور زنی میخوای بگیری ناسلامتی من کارشناس عروسم تو اگر کارشناس بودی برای خودت تاله خوبشو پیدا کرده بودی چرا پیدا نکردی ها؟ واسه اینکه شغلمون بده تا حالا شده یه دختر خاون می بیاد دواززم قددا عروسی بخره بعد بدبر دنباله یه اقا پسری مثل من بگرده نشده که همه وقتی میان اینجا که هفته دیگه میخوان شوهر کنن. مگه همه کاسبا میان با مشتری ها رو میکنن. <تصفيق> چیزی که زیان دختر دم برق. اینقدر لفتش دادی تا کارگر ملک و عروسی کرد لفت کارگر ملک قدش به این پیشخون نمیرسه اون وقت من با این تو خیابون را برم مردم نمیگن چرا لفتی زنه زن نصفه گرفتی عروس خوب که نباید انقدی باشه عروس خوب نبد که اینقدر خیکی باشه که لباس تو تنش بهتره که شب عروسی هم هی چلو کباب بخوره نوشابه بریزه رو لباسش عروس خوب که نبد که یا لاغر باشه انقد... انقدی آخه این عروس میشه عروس خوب باید خوش اخلاق باشه خوشگل باشه مهربون باشه با شوهرش درد دل کنن حسله سر نره بسه با سه با از تنهایی اصلا دیگه به ما مربوط نیست هر کاری دلت میخواد بکن بریه دختر پیدا بکن با عروسی کن مبارک باشه رضا این لباس پشت بیترین رو در میاری آدلس هم دفتره بر میداری میبری. در خونه مشتری میدی و بر میگردی. نه نمیشه آخه چرا نمیشه برای چی نمیشه نمیشه دیگه آخه دلیلش چیه نمیشه میگه نمیشه آخه میشه لختش کنیم واسه تو خیابون مردم بیان تماشا کنن در انزار لغت واسه. عزیز من مسئله ای نداره مسئله نداره بس ناموز چی بیشه آقا برو یه چادر سرش کن خب یه چیزی دیگه تنش کن میرم مزون من این خانمو برگردم حواظ جمع باشی آقا ریزا مانکنو رو از پشت ویچین برمیداری میره داخل فروشگاه بیبری یه گوشهی که دیده نشه با چشمه بسی لباس روز از مانکن بیرون میره همینطور داری با من بی زحمت لباسای شما رو بدم به یه عروسی که کار اونم را بیفته میخواد ازدواج کنه خوشبخت بشه حالا دست گل از دستش درد شما هیچ نگران نباش من خودم برات درستش میکنم شما اه ببر. من خودم برایت یه مدل قشنگ درست میکنم حالا روزری و شال اندخت سرمان کنم شما نگران نباش من خودم موازمم. ها نه بابا اگه شلخته بود میخواست شربت بریزه رو لباس اصلا من بهش نمیدم ها؟ خیالت راحت فقط شما بی زحمت اینو بپوشون که زیاد مولوند باشه چشم حواسم هست آقا رزا اومده مجلس عروسی سلام این لباس عروس محمود اقا فرست داده شما درد نکنه من باید اول عروس رو ببینم با عروس چگاه بریم خب من باید ببینم عروسی موقع وقت چاق نباشه خیکی نباشه لباس خراب بشه خراب چیه؟ خجارت بکر خجارت چیه؟ خب اگه اندازش نباشه امانت خراب میشه صحابش از من دلخور میشه بازی چیه؟ محصول بله. ببین پسره چی میگه چی میگه آقا تو با آقا رزا با دوچرخه در حیاتو خونه ای رو که اتاقای زیادی داره باز میکنه سلام آقا رزا به سروشه داره در... سکر رو میکنه یکیسه میوه دست آقا است با دوتا نونو سنگنگ دوچرخه رو میذاره یک گوشی یه دونه نون بزنه همسه یونی سلام حالت خوبه نه <تصفيق> سلام بفرده خدا عمرت بده دست دردن دست برنه سلام برنه نه نه من تو دفترم یه صفحه بازه شما درست کردم همه رو بینویزم آقا ماتزا خوبه؟ سلام منحبات شما بسه همیشه اشالله یک خوب بشه اشالله عروسی سلام. سلام. دلوقتي. دلوقتي. سلام, سلام سلام حالت خوبه سلام حالت خوبه سلام سلام حالت خوبه میرم گاز بگیرم یه خانومی داره برنش بافید بریم از پله ها میره بالا اینجا اتاق آقا ریزا خود پدرشه پدر آقا پیرمردی که نشسته رو تخت داره گلهای سینوی رو رسم کنه توی اتاق قفس مرد عشق هم هست امروز چند نفر از این کاسبا و محمود آقا دور من گرفتن با اصرار میگم باید ازدواج کنید روی یکی از دیواره پر هم. از عکسای مانکنای لباس عروس آقا روزه باسینی که سیوزمنی توی اونه و میخواد پوست بکنه از توی آشپسخونه یک کچولی و اتاق میاد طرف پدرش بهشون گفتم این حرفا چیه من اصلا اهل این حرفا نیستم اون وقت محود آقا گفت من یه نفرم سراغ دارم خب راست پیدو یه این هرپوچیه کدومه بلاخره یکی میخواد پای ما رو جالو کنه یکی میخواد یه آشد داخل روز کرد باست یکی میخواد چای چایی بابا بده با خوریم تا دیدی دیدیت آزگیار کدوم تا هره دخترمون دایه بغیرتت بابا اون که بچه است اون بچه است وای اگه وا جای بود هفته ورکه داشت من برم از این زنا بگیرم نخ نه میگم برای یه دونه بسازم اون از محمود آقایی نام از شما سلام حالت خوبه اول این انسان های مجسمه این کوچولی عروس داغ داشت اون متخصص فروشگاه بود و از زیب پیراش بیرون میاد تو میز رو تاخچه این مادران میاد میاد پشت تاخچه لپره دار پدر آقا رادیو روشن به دست رو تخارش اسم شما چیه؟ خانوم ماریدین فین خانوم شما ناراحت نباش. همه خانوم اینجا هستن اون وقت با هم صحبت میکنین دیگه حسرتون سر نمیره الان من شما رو میفرسم تو مهمونی بشینی پیش اینا صحبت کنین حصه نخوری اونجا که شما بودی حسرت سر میره من آوردمه با اینا درد دل کنیم که از تنها تنهایی دراد آره. خدا سب کنیم مثل آه. اینقدر سرسدار نکن سرم رفت مثل که الان پنجات زنبول در گوش ما رو میزوزو کنه بگه همه رو پاره بکنم آه. واسه ای چی؟ واسه این که جول دراد ندخشی ندخشی ندخش زه داره کاپشنشون رو پوه و از پله ها میاد پایین خانمی روی پله ها رو جارو این خانم محسن میخواد تا شک بزرگ پنبه ای رو بندازه رو بند آقا ارزه میره کمکش میره دوچرخش رو سلام حالت خوبه در منم بیام تو خیابونه سوار بر فروشگاه خطاب به مانکن میگه. به دیدی که لباسم هیچطورش نشود سالم وارد آوردم. نخوندم خراب شده از بس زخم شدی حالا وارد یه لک میخرم یادونه؟ چرا بام وارد میخرم؟ حتی اینجا باهی میسی در انزار مردم. با. سلام سلامو این چری بیرونه؟ حب. چرا پرداری کشیدی؟ میزنم سر جان زود برو پیش همسی عسکر آقا خب. یه دونه دست چپ میگیری؟ بر میداری؟ گیج بازی در نگاری؟ چر میبری میدی میزنه ناید خانم این هم زود برمیگردی میگردی خیل آقا رزا اومدی دم کارگاه منکن سازی دنبال دست نقلی منکن شبا. مالو مالو سلام حالا توبه؟ مرحبه؟ عباس سلام حالا توبه؟ دست نقره یه رو معمود آقا گفت اگه آذره بده ببستی؟ بفرموی؟ رو دست درد مکنم، یه دست رو میگیره میذاره تو خورجین دوچرخه سوار دوچرخه میشه و میره می حالا داره از دم مغازه های سنگ قبر تراشی رد میشه دوباره اومده کنار قبر مادرش نشسته من میخوام برم برش یه جوراب بخرم بیا واسه تو گل میذارم اون وقت میخوام براش که لاک بخرم که دلخور نشه واسه تو هم میخرم آخه تو که لاک نمیزنی میری روزه بعده لاک اونوقت تو بابام تو تاکسی در رو واکر من با دوچرخه خوردم به در افتادم تو جوب آب اون وقت از خواب پریدم آبا رزا یه چایی بخور من که نمیتونم بیام این تو آبا رزا چاش اومدم کاری نداری؟ بلند شو میده با دوچنخش دم در همون خونه کنار قدسی محسوم خانم اینو از روی الگو به دوزا گفتن انقدر کم و زیاد نکن اون وقت عجالم دارن ها. آقا رزا اون دستم حالی چیه؟ این مال مانکن خانم حددادیه داده بود تعمیر من واسهش گرفتم ببین محسوم خانوم یه دست صدا نداره دو تا دست صدا داره مثل زن و مرده یه دونش که فایده نداره اگه خدا میخواست که زن و مرد نباشه یه دونه درست میکرد که خودش با خودش درد دل کنه هر وقت هم دلش خواست واسه خودش بچه دار بشه رو هوا بیا اینم مال این لباسه هست از جیبش یه نایم بیده میده به معصومه چرا باشنگه گفته خدا خودش شریک نداره گفته آدم باید شریک داشته باشن که قصه نخورن تنها بمونن توی کیسه ماروالیده مورواریده از دست محسونو میریزن رو زمین محسون خجالت میکشید سرش مندازه پایین آرزه آرزید دم فروشگا از دوچرخه میاد پایین جراب شلواری بدم شلوار داره جراب, جراب معمولی معمولی جراب دارم همه را اقام فکر کنم خانم ها سلقاقی قبول نداشته باشه. بطورن تشریف بیارم خودشوان نه اون سلیقه منو قبول داره خودش گرفتاره همش گرفتاره یه جورا معمولی سفیده باشگر چشم این خوبه آها آها این زخم روشو بر میگردونی طرفی ویچرینو منکن منکن نیست سلام حالت خوبه من رفتم برد یه شیده خوب کاریدم الان الان الان به که صورت نداری دیده میشه اه, اه خانوم چرا رفتی؟ چه؟ چرا؟ چرا؟, چرا بب بب بب محمود سلام آقار داره آقا بله مانکنه چرا تو اون ماشین چرا دست شدی؟ رو بچه؟ رو بروی یه ماشین می‌بینی که پارک شده شیشای ماشین بالا کشیده شده آقا ریزا به سرعت از فروشگاه میاد بیرون ماشین با مالکن حرکت میکنه و میره آقا ریزا همونجا میمونه آقا محمود صحب فروشگاه داره به آقا نگاه میکنه که قمگین و نراحت تو راپای صفیدی رو که برای مانکن خریدی تو دستش گرفته چرا این عداره خودت در میاری چرا خجالت نمیکشی شما اصلا منو آدم حساب نمیکنی اگه میخواستی بفروشی میگفتی من خودم پوریشو میدن مگه حرف حساب خالید نمیشه این که بردش با باجناغ من بود همینطوری دادم چند دفعه اومدن گفتن که اینا نباید توی مغاز توی بیترین مغازه باشه میخوای بیان در ببندن من تازه برای جراب خریده بودم خب جراب پایین یکی میکن لا، لا، لا، عجب بیره. حالا بس کجا بس میره؟ چقدر دلش با من تای میشه؟ چقدر خوش اخلاق بود؟ تو قموش شاید لبخند میزد؟ خیلی خوب دیگه، بسته شعورش دره وردی. این مثل اون میمونه دیگه این کجاش مثل اونه؟ آقای ما حرفی نداریم به هم بزنی دو تا دختر جوان وارده فروش کنشن آقا پشتش به اونوست سلام خسته نباشی سلام ما تور میخواستیم چه تور عروس دیگه نوعه بهتری نوعه توری که دریده لطف چهش ببینم اینو بخ، بح... بخ، بح... چقدر عالی همینی که میخواستم مریم بره، قشنگه خیلی خوشگله خانم چقدر لطیف و عالیه، من یکم دست بزن بره بره. پس همین خوبه؟ عالیه خانم تو کار لباس عروض هستم بله این قیمتش چنده؟ قابلی شماره نداره خایش. مغازه مال خوی شما به پسنگین خالی خیلی سخت ولی. هم بله. سخت سلیقه چیه من میگم لباس عروس باید با بهترین تور و بهترین پارچه دختشه درسته. طوری که به عروس هم بیاد درسته. درسته عروس هم باید از اون عروس ها باشه آقا رزا همون جور که پشتش به با دقت به حرفاشون گوش میکنی از حرفه دختر جبان خوشش اومده یواش یواش روش رو بر میگردونه طرف اونا بیوان صورتی که از خیلی شبیه مانکن آقا رزاست با خوشحالی بلند اگر... میشه اشکال نداره خانم. توپش سی متره ولی این 20 متره خون اشکال نداره متی چند؟ آبه نداره؟ متی ازار پونسد میبرم چیزی خواستین؟ بای لطف میکنین زه من میگم کارگرم براتون بیاره رضا. یه کارت مغازه رو بده به خانوم. اینم بپیچ، بدم خانوم وردر ببریم. مرسی خانوم. آقا میشه کارت مغازه رو به خانم جوونه مهربون میده. یک کاغذ میپیچه دور توپ تو رو میده به اون. شما درد نکنه. ممنون. مرسی. خدا حافظ شما لطف کردید محبت خداحافظ. کردید خانم مهربون و دوستش از مغازی میکنوی رو میخواییم براتون بیارم نه عزیزم آقا روزه از پشت پرده برفته به اونا نگاه میکنه و میگه گفت. گفت. نه عاش میکنه <تصفيق> آقا محمود داره آب قنده میکنه میکنه این من که حالم خوبه چه من حالا... بیا بیای آب قنده بخور فشارت اومده پایین فشارت نده من حالم خوبه قلبم فقط تون تون میزنه پاشو پاشو بارو خونه تو برای آن امروز اه... اه، هر روز می... کار بکن نستی بهتری روز روزش کار نمیکرد می میگم میشه آدم هم حالش خیلی خوب باشه هم خیلی بد چرا نمیشه؟ من الان هم خیلی خوشحالم، هم خیلی ناراحت <تصفح> تو کلم آتیش گرفته آخی دستت چه خونه که الان تو دیگ حرف زدی صدا تو کلم میپیچه چیزی نکشیدی؟ سیگاری قیلونی من حالا سیگار نکشیدم تو کشیدم چش... پاشو خونه الان یا مشتری یا اینجا بده ازشته راست میگه پاشو چیه چته؟ دستکش کیه دس... دسکشه دستکش اون خانم هست که ما دور اینجا تور خریده بود خب پس کارتشو بده من تلفن کنم براش ببرم اون که به ما کارت نداده ما به اون کارت دادیم بذر باشه میاد خودش ورم داری میبره رزا دسکشوی سفیدو میذاری تو جیب شد شدید دست میزه رو بش حالا <تصفح> شب شد آخریزه برگشت بکنید در یه جعبه شیرینین رو باز میکنه و به پدر شیرینی تارف میکنه بپرمی این که بذار هیچی هیچی به نام کیه هیچی گفتم شما بخوری شیرین کام بشید حتما محمود آقا دخترت رو چیزش بدهن دخترها نه بابا اصلا فامیله محمود پس کیه؟ وای که بینم دختر پدرش چیه مادرش کیه؟ جدابادش کیه؟ بابا اصلا خبری؟ اگه خبر میگید پسیل اینقدر عداواتفار در میاری پونزدش اشکه گولم به دادم حالا پونشو نهدی حالا میان الان حساب آقا ریزه با جعبه شیرنی از اتاق میاد بیرون و به بچه های دو, دو پلی حیط نشستن و درم درست میخونن شیرینی تعارف میکنن از پلی ها میاد پایین بیره طرف اتاق زن همسری موسم بزدر حیط مده بیرون برا آقا کرم بفر آقا رزاد چه تبره؟ مبارکه دیگه خیلی ممنون، دستان کسی به دفتیه اه خیلی ممنون، خودم مبارکش باشه سلامت آه. باشی عرسی و بچه ها دیشالا. سلام با. خبریه دیگه مبارد. مبارد. آه آه شما در نکنه به برای آقا تقی شما در نگران نشید. من برم دم خونه همساده ها سلام نصف شب آقا با چشمای باز تو خوابش دراز کشیده پدرش خوابه آقا از زیر تشکش دستکشای سفید و بیرون مییاره اونا رو میذاره کنار رخت خوابش و راحت میگیره میخوابه صبح شده پدر آقا رزا داره چای درست میکنه آقا از خواب بیدار میشه ایود دستکشا کنار رخت خوابش نیست نگران میشه میره طرفی پدرش اون دستکش رو برای چی من مال تو به برای دستت از دست پدرش درمیاری. آقای رز در با حسن شاگرد مغازی همسایه ناهار می‌خوره. اگه آدم یک کسی یا دوست داشته باشه چیکار رو حد بکنه؟ اول باید دربارش تحقیق کنه. خب. بعد به خاطف گرو خب بعد از با هم رفته باشم. من تحقیق کردم. ولی هنوز سربازی نره سربازی دو روز رفتم روز اول لباس دادن با پوتین روز دوم اخراجم کردم خب یه کاری تحقیق که این داختنه بیرون نگرد اگه من کاری نکردم حالا تحقیقم کردم از که تحقیق کردی؟ از خودش؟ باید خودش مراک نیست. چرای نیم؟ خب این وقتی به من بگه عزیزم عزیزم یعنی دوست داره دیگه نه این عزیزم عزیزم دوست که. شاید میخواد یک کار کنه که تا, تا آخر تو زندون باشی آدم کسی یا دوست داشته باشه یک میکنه بره زندان آره باید عشقش دو طرفی باشه دو طرف دیگه میگم اون به من میگه عزیزم من هم دوستش غروب شده رزا بازم دستش به دست مغازه محقازی منتظم آشسته آقا محمود صاحب مغازه بایی مشتری از مغازه میاد بیرون ریزا با سرعت میدید داخل مغازی محبت فرمید ریزا مغازه جدید باز کردی؟ میخوای برم برای چای قبل بیارم؟ نه خیلی بود تو برم تلفونه تلفن الو سلام دستگشاره میخواد چند روز پیش؟ چند روز پیش بود دیگه آره بابا کار زده کن نه بگی من آدرسشو بدم. گوشی. آدرس من برم بگیرم بدم دست. بوچری این کارا رو میکنی. این پسرانه میمونه باش کار داری. نه. آره. اون چه کارا برگشت است هر کاری میخواد بکنه بکنه شب شدی. رضا بازم منتظر نشسته دمه در مغازه تا شاید خانوم صاحب دست بیاد پدر رضا داره از پیاده روی تاریک روشن با یه بغچه که دستشه به طرف مغازی محل کار رضا میاد رضا، رضا. لامپای مغازه از داخل روشنه اما کرکراهای آهنی در و های مغازه رضا. از بیرون کشیده رضا. شده کیه بابا؟ کو گیتی صاحب دارا من گرفتارم. ورجون ترکیب تو رو همش گرفتار، گرفتار میرم مشتری رو رختخسر کنه. بیا چند تا روز داره مارو کون نوادت کشتی می‌بری. رو براش می‌ذره پشت در. حالا روز شد. رضا سوار دوچرخه توی خیابونای شهر. میره دم در مزون گلی یه بسته پلاستیکی تحویل میده. سلام اینایی که میخواستیم براتون آوردم مرسی، دست و سرم ببخشید صاحب مزرعه شما اون خانوم است که قدش بلنده ابروش قشنگ انجریه لباس قشنگ میکوشه اکرم خانومه دیگه اکرم خانومه؟ بله. اکرم خانم، آقا رزا با شما کار دارن. سلام چیه؟ yeah. نه هیچ میخواستم بگم خسته نباشه دلمت بیشه چشم در رو میبن دیومی اومده دمه یه مزانه دیگه بفر بسید در بکنم ببخشی اینو بده به مزانه آلگو داره؟ نه خودش میدونه قرار چپار کنم ببخشی صاحب مزانه شما یه خانوم قد بلنده آره چطور مگه؟ که ابروهاش ب... هم اینجوریه بعد ماشینش رنگه آلبالو لالسه من نمیفهمم بعد... چی میگی سرکن بگم خودش بیا خودشون تشریف دارن الان تشریف میارن آقا ریزا با من کاری داشتی سلام نه هیچی خسته نباشی آقا سوار سواری دوچرپه داری میره طرف قبریستن ببنشید ببنشید ببنش. به مزار مادرش دوچه هم نگهد سلام حالت خوبه؟ دیدی گفتم خودش میاد خودش اومد حالا شاید بافت دنیان واسه تو بافته باشه فهمیدی؟ حالا من نمیدونم چرا باهم شد دیگه؟ موارزو بفرما چایی سلام حالت سلام حالت حالا الان من یه خونه گرفتارم خسته نباشی کسی اومد در خونه‌ی معصومینا سلام حالت سلام. خوبه خوبی اینو مرزن خانم گلی داد گفتش که مثل قبلی باشه میدونم چجور جوری می تو رسیدش ببینم ببین سیبو بخور دستت درد نکنه کسیفه؟ نه حلوا بهش چسبیده ببخش حلوا خوبه محسوم خانم اگه یه نفرا دوست داشته باشی چی کار میکنی؟ محسوم با شرم سرش تکون میده و کاروش رو دستمال گلدوزی میکنی؟ گل میدوزی؟ اما حیف حیف که من گلدوزی بلد نیستم محصومه بلند میشی میره آقا ریزم بلند میشی با درده سلامت خوش آمد آقا تو مغازه داره تو دست کشه سفید پولکدوزی میکنه حسن شاگرد کوچوله مغازه بقالی رو میز نشسته بود داره سیب پوست عشاند. میکنه اکبر پیغام داد یه لباس عروس براش جور کنی جور میکنن چرا اینجوری دوختی ای آخه آدم کسیو دوست داره باید براش گلدوزی کنه با پولک بدوزه قشنگه ای آ رز لبید دستکشو دوخته به هم با چا پولک حالا چه جوری دستش کنه ای دقیق دستنگ دست اه اه چرا پس؟ سر صحابه مغازه اومد دستش رو زود بذاره که جیبش سلام حسن از رومیز میاد بکنه رزا ها بفت بله بفت بفت ها. بله جل دی میری پیش هست کر میگه محمود آقا گفت ده تو تنه برای هفته ی لیگه آماده بکنه مال باجناغ منه چش تو اینجا کار میکنی؟ مالا بودم خواهر شما رو پرسم بیا برای بیا برای اینا چیه؟ الان جمعش میکنه. اون دستکشا کجاست؟ کدوم دستکشا؟ مالا اون خانمه که ماده اوز خرید بکنه امروز هم خرید بکنه اگه دمه دست بود میدادم بهش آدرسشون رو نگرفتی؟ آدرس میخوام چی کار؟ رزا سوار دو چرخی از کنار دیوار قبل استن مصروم خانوم میشه زحمت بکشی این دستکش قشنگ پولک دوزی بکنی؟ کینه اینجوری کرده؟ یه آدم بیشعور که بگو آخه بلد نیستی؟ آخه مگه مجبوری ورداری خرابکاری بکنی؟ عب نداره آخه عب نداره که یه بارم رفته یه دامن عروض قیچی کرده خیال کرده درست میکنه آخه بهش میگن اشگول نراحت میشه آقای ها میشه خواهش کنم یه فتیله واسه این چراغ بگیری؟ فتیله میگیرم میارم دستتون در نکنه فتیله داشتم گم شد میگیرم فتیله تو سوار دوچرخی میشی اینجا کارگاه مانکن سازیه آقای با پیرمردی روی کوهی از نوارهای کاغذ باطله نشستن یه پسر با سینی چای به دست به طرف اون می دسته شما درد نکنه آقا و معمود آقا گفت برای هفته دیگه ده تا از این نمطها برای باجناقش میخواد. چاش درست میکنینش؟ چای بریزم واسه آقا؟ نه چای نمیخوره. این روزا اوقاتش تلخه. ا خدا بد نده. چی فهمتون باشه جا گذاشتش. ان پیدا میشه. میگم اگه آدم دنبال یه چیزی که گم کرده بگرده چیکار بد بکنه؟ آگاهی میدی به روزنامه؟ خب موجدگایی تعیین کنن شاید چی پیدا بشه خب نه اگر آدم باشه چی آخه خب اگه آدم باشه اینکه کاری نداره دو دستی میاره تقدیم میکنه این پولا خوردن نداره نه میگم مثلا اگه آدم گم شده باشه آدمه گم بشه این چکه به محل کشیده بینیم که کارونتری شکایت میکنیم مابون میراثم میارنش و فد کردن این شما میدم چی حالا نه چایی بفرمی در از گوری چای توی فنجون میلیزه آقا اومده مغازه سماورسازی سازی یه فتیلی چراق میخره و میاد بیرون میده طرف دوچرخش از دون میبینه دختر جوانی که اونس همراه زن صاحب دستکش های سفید اومده بودن فروشگاه دمه در یه مغازه پارچه فروشی داره با یه آقای صحبت میکنه. دختر جمعی حالا کنار خیابان منتظر تاکسی ایستاده آقا رزا حال شده نمیدونه چه کار کنه دختر سواری یه تاکسی میشه آقا رزا میره طرف ماشین ولی ماشین حرکت میکنه و میره آقا رزا به سرعت میره طرف مغازه پارچه فروشی میره تو. سلام حالت خوبه آقا ببخشی یه خانومی خلی. الان اینجا بود شما میدونیم محل کارش کجاست چه پرماشی کارش داشتم اگه آدرسی که داری بنویسیم بدیم به ما ما که نمیدونیم آدرس یه زن قریبه رو بدیم به کسی یه چیزی تو مغازه ما جا گذاشته من میخوام برم بدم بهش اگر چیزی جا گذاشته شما بیارید اینجا این خانم مشتریه فردا برای خرید میام من بهشون تحویل میدم نه آخه من خودم باید ببرم بهش بدم مرد حسابی زن قریبه رو که آدرسش کسی نمیدم برو بیرون برو بیرون بد میگم قریبه نیستش برو بیرونش کن برو بیرون, بیرون خب من... بگو فردا خجالت حال میدی خیلی خیلی خب چیه خب وای نه چیکار داشتی؟ کارش دارم. خب به من بگو اینم چیکارش. به شما بگه من یا آدرسش رو میخوام یا تلفن. خود کردی خیلی غلط کردی دفعه دیگه به طرفا. اگه نمیاشید یا چشمه خودی. برو ببینم. خیلی خوب. چه پررو. شیطونه میگه سابش. آقا رسو اومده خونیم. قفص مرقه عشقه گذاشتی کنار رخت خوبش نه ترس من بودم من بودم بسه این کلاخو خاموش کن این کلاخه اینقدر دردن نکنه کلاخ چیه؟ مرغ عشقه تازه من فهمیدم ناراحتیش چیه از تنهایی تنها از بندش بالا پشت بون گربه بخونتش از تنهایی درمه چرا گربه بخورتش؟ میرم برایش جفت پیدا میکنم این مرغ عشقه بعد عاشق باشه وگرنه ده میکنه. میکنه از خودش از دقیق لا لا, لا. خوش قدرت بزار. حالا صبح شده آقای اومده دم در همون مغازه پارچه فروشی دیروزی اون دختر جوون هم دوباره روبروی مغازه منتظر تاکسی ایستاده یه ای تاکسی میاد دختر جوون سوار میشه آخر رسیت به سرعت سوار دوچرخش میشه و پشت سر تاکسی به راه میفته اه. تاکسی نگا خانوم چرا هر چیز صدام کنم پیاده نمیشی؟ نه شماره مادر نداری؟ نه نداری ای بی هیا آقای تاکسی تاکسی دوباره به سوالت لگ کرد میدونی آقا ریزا دنبالش میرونی خانمی که پرین دوست اومدی مغازه خرید کردی باید دار دختر جوون از ماشین پیاده میشی آقا ریزا میره دنبالش خانوم خانم چرا من هر چیز صداتون میکنم شما وای نمیسی پیاده نمیسی شما اومدی سراغ منو میگرفتی؟ آره دیگه منو یادتون نمیاد اومدین مغازه ما تور خریدیم با اون خانومه آقا رزا دیگه خب کچی؟ چرا آبروزی میکنی؟ چی کار داری؟ آخه شما یه دفعه رفتی نه آدرسی نه تلفونی میدونی اون خانومه چی تو مغازه جا گذاشته؟ کیف پوله کاشکی کیف پول بود از اونم مهمتر من فکر کردم شما داریم میای مغازه ما دنبال اون نه من دنبال یه چیز دیگه میگردم خب اگه به من تلفن بزنی من خودم میگیرم میام آخه شما نداریم اینجا هم برانه رو خوشم نمیاد چاش آخه شما بگین هر چی بخوایین. یه تلفن بزنیم من میگیرم میام فقط آدرستون رو ندارم خب من دنبال لامپ مهتبی کچیک میگردم خب لامپ مهتبی که گشتن نداره که من فردا میگیرم میام فقط نمیدم کجا بیام خب بفرما، یک کارتو نذارم خب، دیگه من هرچی بخوایی من میگیرم میام اومد، دیگه چیز دیگه یه هم یه سری خرید لازم دارم که باید همین امروز ببرم واسه خونه میخوایی اینجا هم وای نست و نمیاد چه، پس اینجا یه مغازه پرنده فروشی. آقا رزا از مغازه با یه قفص که دستش میاد دیرون آقا رزا تو خونه است داره دندونش رو میکنه رزا نشسته رو پلاه های حیات خونه و داره کفشاش و واکس میزنه داره لباس میپوشه که بره بیرون در یه شیشه اطفاله رو باز میکنه میپاشه به لباساش در حیات باز میشه مرد همسایه ماشین لباسشویی دستی رو با خودش میاره این الفاظ چیه بیا بدن خودت بیا بچه‌نگونا کو موتورش مثلا ساعت کار می‌کنه بخوای نه وقتی با دو چرخش از در میاد اینه ولا گناه حالا ماو هزار بده کمکت شما درو اخرزه کنار دیوار یه باغ سوار دوچرخه در حال حرکتی او اینجا خیابونای بالای شهره. دم در یه ساختمان شیک مزون لباس عروس از دوچرخی پیاده میشه ساک مقوایی رو که به دستی دوچرخش آویزون کرده و یه کادوی دراز توشه بر به طرف در ساختمون میره تو همین لحظه در از تو باز میشه یه عروس با لباس سفید توری همراه با یه خانم دیگه میاد بیرون میرن سوار ماشین میشن آه. آقا رز لامپ مهتابی رو کادوپیچی کرده. بکنم. بکنم سلام حالت خوبه براتون مهتابی آوردم. خانم تشریف داره. دست درد نکنی بدش به من. بخور شو. اصلاً قابلی نداره. آقا ریزا از دم در توی سالن ساختمون رو نگاه می‌کنه. خانم صاحب مزون که همون صاحب دستکشه سفیدیه. مشغول مصر کردن پارچه های توریه دختر کارگر لامپ محتابی رو میبره طرف خانم خانم میگن هر چقدر میشه بردارید چون دستور دادن همین انقدر بسه من یه دفعه چشمم افتاد به این نیم تنهه که خراب شده میخوایم فردا یکی نویش خوبشو رو بگیرم بیارم نمیدونم خانم، این آقا میگن که این مان... پایش شکسته بعد بدم جوش بده نه آخه پایش خیلی گرون تموم میشه ها نوش ارزان تره تازه اون آقا دوست منه به من میده هفهش تومن دست شما دردن آقا رزه اومده کارگاه منکند سازی آقا اینو کمتر از 15 نمیدم مد حسابی مگه به مغازدارا نمیدی دوازده تومن خب به تو هم میدم دوازده تومن اه. آخه ما با هم رفیقیم به منم رفیقی سرزاش نیم یو چند از دوازده نمیدم خیلیها هر بیستاب حالیه پس حالا من شش دم بهت میدم هر بیستاب حالی میتونی چند تا از دوازده نمیدم بابا چیه همش کاغذ توپ میچسبه نی بهش میزنی هر چی باشه اینو بذی از دوازده نمیدم ببین مگه ما با هم رفیق نیستیم حالت خوبه خیلی ممنون ببین پس من هشت دم بهت میدم نه ای بابا حالا... با کن من اینو ببرم ببین ما الان بهت این سه تومن رو داشته آه. باش من فردا میام باقیشو میدم خب ببین یازدر دادم بهت باشه 100 تومن به تخفیف دارم اونو جیبم میذارم وگه نمیده خیلی خب ببین بایدم سلام برسوم. باشه خدا. آقا رزا داره نیمتنه رو سوار میلی فلزی چسبیده به دوچرخش تو خیابولای شهر با خودش میبری شب توی اتاق پدر آقا با رادیوی روشنی که تو دستش خوابیده آقا نیمتنه قرمز مانکنو با میله اون میذاره گوشی اتاق و یه چادر سفید میکشه روشو خودش تو رخت خوابش میخوابه دو از وی در آغاز از کسی فهم می‌کند. یه دفعه چشمش می‌افته بنیمتنی ایستاده زیر چادر رو وحشات می‌کنه. که که که رضا. ها ها ها که که که رضا. که که این چه چه یا این این جای لباسه خوف داره. نه نه کلم کلمونه. برو تو کنون با. چطور با صحب... ما می‌با؟ امیدوارم که بس سایه لاھی بمونه. دستو قرم خوره و در دیوار. خب من میرا. زباس لام پروشم میکنه و چادر رو از روی نیم تنه مانکن میکشه با این آقا رضا با نیم تنه مانکن اومدی دم در ساختمان شیک مزون. سلام آقا رضا احوالش سلام. حالت خوبه. وا چی شد؟ دیو آقا ریزا دوباره قمش کرد خانم داره آب قند درست میکنی باقی بوده ساختمون داره پشت آقا ریزا رو ماساج میکنی بله بله دست شما درد نکنه اصلا خوب شده شما برم نمیکش خانم بره بخشا آب بدم برو بهتری بهتری اینو بخور حال جا میاد حتما فشارت دختر کارگر مزون داره روی لبه آستین لباس عروز و پولت دوزی شما خیلی زحمت میکشین این همه را رو با دو شرخه کوبیدین اومدین تا اینجا باید بیشتر موازه به خودتون باشین حالا اینو بخورین شیرین حالتون میاد سریجاش پول این نیمتنه چقدر داریزم به همه میده شون شونزه تومن به من گفت 8ام مهر خیم فولاکتوزی پشت ویترین کار شماست نه خیر همون فهمیدم خب معلوم کار شما نیست من خیلی خودم کارشناس عروسم لباس عروس رو ببینم و از 400 متری خودم میفهمم الگوش مال کیه از کجا پارچهش اومده کی دوخته خانوم ما خودمون یه خیات پولکتوز داریم خیلی خوبه همچین میدوزه چشن آدم برق میفته کی هست آشناس یه دختر خانومه خانون صاحب مزون رفته پشت پاروان چوبی و داره تیکای لباسی رو از بالا میندازه روی لبای پاروان آهارزو با تحجاب با اون گوشه خیده شده من اصلا زن ندارم میکنیم برای تحقیق کنید بپسین خیفی شما نیست آقا رزو تا حالا ازباش نکردین حالا تا قسمت خانم از پشت پاروان میاد برون یه لباس عروس میده به آقای رزا ظرف شکلاتو میذاره نزدیک آقای رزا قسمت اونو که آدم بخواد خب اگه این طرفت کارش خوبه و اوزیادم نیست یه لباس میدم مثلا خودش بدوزه ببینیم چی میشه دیگه میتونی ما هم پاری کنیم نه خوبه؟ شکلات هم بفرما آقا رزا یه موش شکلات بر میداری میرزی تو جیبش حالا آقا ریزا سوار دوچرخه کنار دیوار قبرستان در حال حرکتی آقا ریزا میره طرف مقبره بقلی خونی. سلام حالی سلام حالی خوبه خیلی منو بسیم مقبره مقبر معصومه خانوم سلام حالت خوبه؟ چیکار سلام میکنین؟ سلامت بشی این بچه ها این بند خدا از خارج اومدن قره شمه جمعه بیان سر خاکش من, من اومدم اینجا رو تمیز کنم من بهت شکلات بدم اوقاتت تخت نباشه شیریم بشه اوقاتت یه لباس هم بردم از همه لباسایی که تالا دوختی مهمتره یه؟ yeah. جوری به دوست که همه بگن خیلی قشنگه همه انگوش به دهم بمونم کاری که آقا آشناس غریبه نیست بفرق آقا رزا پس فیتیله ها. چی شد فیتیله فیتیله گرفتم مسوم خانوم آدم وقتی یه نفر دوست داره دیگه زندگی شیرین میشه دیگه همه چی خوب میشه صبح خوشاله که بلند میشه میبینه صبح شده غربای پاییزم دیگه قصه نمیخوره که با کی حرف بزنه به خاطر همین شاعر میگه بدون عشق نمیشه زندگی کرد فتیله اصلا نه خدا فتیله رو میگه به و میره بله بیا برای آقا چایی ببر آقا کلون زده آقا روزا خونه داری با آهنگ پمره زنی که داری داره پمره میزنه واکس میزنه به ما. برش شده هم نبینه آقا بود بعد از میشه سلام حالت حالت سلام آقا رزا اومد دو چرخش رو برداشت و رفت آقا رزا دم ساختمان مزون پشت یه درخ خودش قایم کرده میبینه که خانم صاحب مزون بیرون میاد سوار ماشین میشه و پشت فرمان میشینه دختر و باقی بونم همراه اون اومدن بیرون شبه آقا رزا داره با قیچی ناخونای پای پدرش کوتا میکنه و با همدیگه دیگه حرف میزنه ی خود به من شکولات نده پسر من به تو گفتم که این زن به درد تو نمیخوره شما که ندیدیش به من گفت ظاهر مهم نیست عشق و صفا و سمیمیت مهمه که شما همه داری من پسر من تو نمیگی ماشین داره خب داشته باشه مارم سوار میکنه برای گردش مگه نمیگی خیاط خونه داره آه. من ای نمیگی کارگرد داره خب داشته باشه خب زنی که ماشین داره خونه داره نوکر داره میاد برای من داغ درست کنه شما همش فکر خودتو میکنی اون میخواد با من ازدواج کنه آه ناخو میگیری و پای من دار میبوری آقا ریزا تو فروشگاه مشغل جدا کردن بادومای رنگ شده صفری عقده حسن شاگرد کتولی مغازه آره. بغلستی اه. با یه جعبه فلیزی که دستشی میاد کنار آقا یه ناخنی تلایی ها چیه دستم بنده تا بیاد بیاد تو دیگه یه تلایی جه. تلایی, تلایی. سامن چیه بشیرم و رزا بشیرم چیه هی رزا رزا میکنی رزا اکفر فیغان داد یه لواس عروز برای چوب کنی لواس عروز خب به محمود آقا باید بگه شما تو دوست سمیم من... به من گفت من به تو بگم آها مجانی؟ آره خب حالا یک کاریش میکنم آقا ریزا سوار دوچرخه اومده دمه ساختمان شیرک میزون سلام حالت خوبه خانوم تشریف دارم نه خیر فرمایش یه لباس عروس میخواستم اون لباس عروسه که بردی پولکتو زید کنی چیکار کردی و بردیش اونو میارم آخه کارش هنوز تموم نشده اونو میاره دوستم به سلامتی میخواد ازدواج بکنه گفتم یه لباس از شما بگیرم به ما چه آخه یه دست لباس عروس کامل میخوام برای عروسیش اولا که ما لباس کرایه بده نیستیم بعدشم اینا سفارش مشتری اورجیناله بعدش هم به خانم گفتم به فریب خانم گفتم اون ور وایساده صبح اینجا رو دید می زدی خجالت بکش این کارا, ای ای کارا یعنی چی یا همیشه یه طرفا میپلکی یا می از مغازه درو در مورد من سوال می‌کنی این کارا یعنی چی ده دیگه اینجا مزاحم یا بودو وقتی اخراجت کردم خودت میفهمی چه دختری پررویی ها فصیدی اینجا میخواد چی میگی برو رد لباسا رو بیار شش درو محکم میبند آقا روزا آقا روزا عصبانی آمده سراغ چه علیکی؟ آخه مگه من به شما پول نمیدم کار کنی مگه من پول از توی جوبه آب در میدم که ببین من اصلا اینها این حساب آخرمونه اصلا هیچ بدهی هم دیگه شما نداری آخه واسه چی پس کار نمی کنی من حالا جلوی مادرم حرف بد نمیخوام بزنم حالا مگه چی شده آقا رزا؟ دیگه میخواستی چی بشه؟ شما یه کاری کردی که یه دختر بی سر پا هی به من میگه چی شد؟ چی شد؟ خب چند وقته من اونو آوردم دادم به شما؟ خب چرا درستش نمیکنی؟ با آبروی من شوخی میکنی؟ اون لباس خیلی وقت حاضره من تا شما نایمده به بریدش حاضره؟ من نیمادم خب خب ورش دار بیار اونجا من برم با مادرم صحبت کنم بلن میشه و میره. رهی. پا میشه می توی اتاق که اونجا مادرش داره با یه خانم صحبت میکنه. آها، آه ظاهراً این خانوم خاستگار معصوم است. معصوم لباس عروس رو بر می داره میاره بیرون. میبره بره رو دوشغرقه آقار زين. معصوم لباس عروس رو بر میاره بیرون می میذاره رو دوشغرقه آقار نباز عروس رو به همون میله آویزون میکنه و میله رو میذاره جای مخصوص خودش روی زین دوچرخه ولی نخواسته حالا تا قسفت قسفت حد چی خدا بعد بعدا ان... نیام قشنگ برای تعریف میکنم خب فقط ان... اومدم بهت بگم اون قضیه اون خودش حرشتیه نگرانش نباش خب حالا یه روزم میارمش خودت ببینش بعد سلامم رسون ببین به به به چه قشنگ محسوم خانوم کی اومده اینجا شسته گلاب ریخته هیچ کس من خودم منم فاتحه خوندم اونجارم شستم باری کلا الله دستت درد نکنه خوب کنی چقدر قشنگ شد از کار خانم آسف هم شد شد کل. حالا من الان برات یه دست خوب مینویسم خودت چیف کنی دن فروشگاه محل کار آقا رزا اکبر و حسن منتظر نشستن بسن پتیزتان نه ایمد گفت میان هم یرانید ساعت کنیگه آل یک ساعت چنده؟ یک ها ساعت دونه نشونه احسان بکر کردیم ببینه اگه خود تو لبا سروس میکنه ما بله دعوار یا سروس آقا سلام آقا روزم. سلام، حالت خوره؟, خوره. دارو با اکبر رو میکنه میکنم چه تو این کاسه عروسیه؟ شب بابا بود شو بیا کنم با هم یه قیر بزنیم ای <تصفيق> <ده ده افه. تصفيق> اک در لباسش رو اصل خزی ت دو و با خودش مازهش شب توی اتاق سفره شام دو نفر آقاارضا و پدرش پهده پدر یخ می داره نیم رو میخواره. کارت عروسی اکبر رو گرفته جلو صورتش نهخور اووض می خورم ها؟ از ساعت۱ تا دو به صرف شام که ما نرفتیم این کارت عروسی اکبر این اکبر این عروس منم بخوام عروسی کنم از این کارتا میگیرم عروسی میکنم از این کارت ها میکنم. اینجا دم ساختمون مزون فریبا خانومه فریبا خانم در حالی که دختر کارگر مزان پشت سرشه از ساختمون میاد بیرون و میره طرف ماشینش که یه پژو آلبالوییه آخا ریزه دوباره پشت قایم شده اونو میبینن حالا با خانم سوار ماشین میشی. سلام حالت خوبه؟ ماشین. خانم ماگرزنجی کار میکنی؟ یه پولک خارجی گفتم به درد شما میخوره براتون بیارم؟ نه ممنون ما پولک استفاده نمیکنیم. پولک استفاده نمیکنیم. خب باشه خرمالو بفر به فریبا خانم میرو دست شما درد نکنه ممنون من فکر کردم لباسی که برده بودی پول رو بردی او اونا... نه اونو م... م... میارم حالا این کارت عروسی اکبر گفتم ببینم شما از اینا دوست دارین یا از اونا که درشکه‌ داره عروس خانم تو درشکه مبارکشون باشه همین خوبه آقا رضا امی... کار دیگه‌ای ندید دیگه اینجا وای نه سید آقا رضا خود تای برید خداحافظ بفر به خانم شیشه ماشینو میده بالا اکبر با لباس عروس و جعبه شیر نیم یا تو فروشتا سلام آقا روزا سلام حالت خوبه آقا روزا قابل ندارستی عروسی دیشب در ایمدی اختیار داری مبارک ها باشه درستت در نکنه خیلی مبارک باشه عروسی کردی داری. این لباس زحمت کشیدید آقا رضا نشه دست درد نکنه فقط شرمنده خانمم گفت مسئله که یه ذره دردش باشه یه ذره نداره کجاشه میدوزیم کجاشه درزه ا ا ای این این آخه یه ذره این درزه این یه ذره کلهی آدم میره توش این یه ذره است نوکارت آقا رضا <clears throat> آخه، ما آقا آخه منو دیدم آقای رو می اینجا خونه پدر مادر معصومه است پسر جوونی با مادرش اومدن خواستگاری محسومه معصومه بیرون خونه رو تخت نشسته حرفاشونو میشنوه پسر دوستت به منسوی نگاه میکنه؟ بچه چیکه تو نزد باشی؟ بفرم این دهانت شیرین کنی؟ نه ما در نهفونه. وارد ما در نه. بچه خودش جلاتیه. این خانه خانی جاملا آقا رضا، پیراهن عروسی بده توی قبرستون داری میاد طرف معصومی که لبه تخت نشسته و داره دستمالی رو گلدوزی بیده. سلام حالت خوبه؟ معصوم خانم این لباسی که با هزار زحمت پولک دوختی من قرضم به یکی رفته پاراش کرده آورده. حالا میتونی بدوزی؟ من نمیتونم بدوزم. چرا؟ من نمیتونم بدوزم. ببر پیش همون کسی که پاره کرده بدوز. همون کسی که پاراش کرده. هر روز یه با اراد می میگیرین. بازا زحمت من اون جوق می دوزم، پولک می دوزم. شما هر روز می یه به اراد میگیری. خسته شدم. نه من خانم... کولپک نیستم. این همه سوزن به چشمان میزنم آخرا یک اونمتون لازم میشین. میگه همه دنیا الان به خاطر پول کار میکنم پولم نمیخوام، کارم نمیکنم. از روزم تصمیم گرفتم کار نکنم. خانم وایسا. یعنی ببیه؟ چی؟ وایسا. ببین، معصومم خانوم. حالا واسه اینکه آشدی کنیم من یه چیزی آوردم. محسومه بلند میشه و به طرف خونه برام جوراب بستید. کلوفت پادداغ میشه دست رو حالا پک ندوزی؟ محسومه جورابایی سفید و از توی پس پس خدافر شبه آقا رضا. نشسته توی اتاق و داره لیست مهمانه عروسی رو تعییم میکنه فامیل امن نصرت چی بود؟ اینقدر دریبری نگو ما که رفتیم خواستگاری؟ کدوم دختر کدوم گید؟ بلنجو برش کن بری زور کارت عروسی آقا شعرش رو نخوندی؟ بلنجو برانی اصلا تو دوست نداری؟ من خوشوقت بشم سر و سامون بگیرم گفتم برانی چو برو اگر رو کشم دور چو تو از اول که من از اول از من دادم؟ من چیکار کردم؟ برو گم چو خیلی خوب من میرم اما اگه دلت برای من تنگ شده قصه خوردی نگی چرا رفتی؟ چرا رفتی یا؟ خیلی خوب حالا میبینی من به گروه پدرم میگم داخل دلم دوربین برو بنام ده، من تنها میمونی. هرچی آش درست میکنم کنم نمک درد. شور این, این نمک نداره. خودش شکر میلیزه تو غذا. اون وقت پدرم میگه این چه این جوریه. اگه بلد بودی برن برن. خودت درست می‌کردی. بیا تو ولا گنج. گله که دیروز مثلا کارم کردم. نمیخواستم کار بکنم. پدر وقت مهربون باشه. با چش نه این که صبح بهش لگت بزنه گفتی لباس چلقاهون خودمون بشوریم هی جرابات رو با من عوض کردی گفتی تو پوشیدی پالا توی یخچاله برای شام خیال میکنه که من نمیدم اوه کجا؟ شعور قرکتالم نداره با اون باروندی رو پاسپالا میگیرنه داد راب بچه. عقل نداره که صبح بره صبح شده محسومه چادور گلی به سر اومده دم فروشگاه لباس عروس دوچرخه آقا بیرون فروشگاه. محسومه دست میزنه به زنگ دوچرخه از در فروشگاه میره تو معصومه میره پشت پیشخان مقازه سلام سلام حالت خوبه؟ خیلی من. من رو براتون آوردم. دستت درد نکنه. به به به به. چقدر قشنگ شده. چرا زحمت کشیدین؟ میگفتین من خودم میام، آدام میآوردم. گفتم خودم بیارم میارم، بیا شما راحت بشین. چقدر بد تقدیم کنم؟ من برای پول کار نکردم. گفتم کار شما را بیافته از این تورا دارین به من بدین؟ بله، چرا نداری؟ تازه از این بهترشم دارم. شما فقط یه دقیقه وایسا. شما بیا اینو ماواظه به مغازه باش، الان من میام. اونجا یه آینه وسط چندتا عکس عروس کوبیده شده به دیوار معصومه خودش رو توی آینه می‌بینه یه تاج عروس که روی پیشخانه رو برمی داره میذاره رو سرش دوباره به آینه نگاه میکنه معصومه با تا چقدر خوشگله آقا دوباره اومده دم میزون فریبا دستگیش ها رو میده به فریباخانه سلام حالت خوبه؟ سلام آقا رزا حالتون خوبه چه خبر؟ اومدم اینا رو تقدیم بکنم اینا چیه؟ اینا مال ما نیست؟ چرا مال شماست؟ نه مال ما نیست تو مغازه جا گذاشتی؟ نه نه نه اون روز که با هم آشنا شدیم ببین آقای رضا اینا مال ما نیست. در زمین اصلا درست نیست که شما هر دقیقه یه چیزی رو بهونه می‌کنی یا اینجا. اینجا محل کار ماست برای ما خوبیت نداره. حالا اگر خواستی می‌تونی فردا به اتفاق خانواده رسماً تشریف بیارید با هم صحبت کنیم. فردا ساعت 5 همین خونه بغلی. خوبه؟ حالا برای با خانم در رو میبنده آقا رزا با کمال ناباوری همینجور پشت در میمونه آقا رزا خوشحال و شاد سوار دوچرخه میشه و میره آقا رزا اومده به عمومی محل شاگرد همممی سطل آب رو میرسه دمه در هممم آقا رزا ساکه دست از هممم میاد بیرون میره طرف دوچرخش حالا آقا توی همون آینه فروشگاه داره خودشو رو میبینه تر و تمیز و نونوار کرده پسرمون میخواد بره خواستگاری آخه خودش به خودش تبریک میگه فریبا خانم و باقبون و نشستن تو پذیرایی. دختر کارگرم از دور پیداست امون جان، این آقا رضا خیلی پسر خوب و زحمت کشیه ها خدا حفظش کنه شما با خانواده زندگی میکنی؟ مادرم عمرشو داده به شما من و پدرم با هم زندگی میکنیم اما خوش اخلاقه رضا به سلامتی قرار خونه جدا بگیری دیگه عشق و صفا و صمیمیت باشه یه مرد قد بلند و شیفوش گوشی به دست از ساختمون دوپلکس دوبلکس طرف پذیرایی دو گوشی رو می‌ذاری روی میز و کنار فریبا خانم ماشینه این داماد کیوتی که میگفتن جناب علی هستی دیزی تک دیزی اول از که ترس نذاری که ساعت ما آقابتشه ببینی <تصفيق> اینقدر آقا روزا رو عذیت نکن آقا روزا شیرنی بفرمی بفرمی شیرنی <تصفيق> بفرمی نه من شیرنی نمیخورم خواهش مکنم بفرمی نه شیرنی نمیخورم این مریم خانم ما خیلی دختر خوبیه هم خانداره هم اهل کاره نگرانم از این است که اگه بره از فرداش ما عملت و پیتزا بو دومین دونم از این چیز رو بخوریم <تصفيق> بفرمی؟ بفرمی؟ بفرمی؟ مریم خالون با سینی چای <تصفيق> میاد تو پذیداری خب امو جان هر حرفی با حال ازا بگی بگو حالا موقعش مرسی شما خودتون توی صاحب اختیاری سرقیه شما است عرز خانم شما بفرمی نشین. مریم خانم میشین. آقا رضا چیش ما 4 تا شدیم. بهتره. با اجازه بزرگتر. به نظر من آدم از اول زندگی باید مستقل باشه. خونه هر چقدرم کوچک باشه، باید اختیارش دست خود آدم باشه. خب ماشینم که از نون شب واجب تره. فعلا همین. بفرشن. یه اجتماعی شده. خب بگو ایزان. آخه آ آره، مرد دست آغالیزه رو میگیره، پا میشن میرن کمی دورتر. مرد, آه. مرد عصبانی میاد میشنی کنار فریبا باخان. وقتی بهت شغل بده بشین تو خونه جیغ میکشین حال مگه چی شده؟ اشون بودن خواستواره جنو مولی آقا رزا به هر من چی گفتی؟ آقا رزا گی هیچ سرگردان از خونه اومده بیرون و همینطور دور خودش میچرخه و را میره حتی دوچرخش رو جا میذاره و میره آقا رزا تفلی اومدی تو فروشگاه و داره با خودش هر بزنه شب شده قفس مرغ اشقا گذشتی رو پاش دوتا مرغ اشق تو قفس هست چی گفتم؟ چی گفتی؟ چرا به شوار من چی گفتی؟ چی گفتی؟ گفتم تنهایی قصه میخوری؟ درد دل میکنی؟ تو شوارد کردی؟ روستش دلی، صبح شده دوچرخه آقا رزا بی صاحب کنار ساختمون مزان فریبا خانم مونده دوروبر دوچرخه پر برگای زرده آقا محمود تو فروشگاه ایستاده رو سر آقا رزا که مبهود رو سندگی نشسته رضا. اتاقشون کنار پدرشه اون همینجوری با دهان باز خیره شده به یه نقطه روزان حسابی افساده و بینا شده پدرش پاهای اونو گذاشته تو لگن آب با پرچ آب میریزه رو پاهاش آقا روزان اومده کنار قبر مادرش دراز کشیده بود. سرش رو گذاشتی رو قبر مادرش محسومه لباس عروسی رو که به بلندای خودش دست گرفته انگار اونو پوشیده انگار یه عروس داره به آقا رزا که سرشو گذاشته رو قبرو رو دراز کشیده نزدیک میشه میشینه کنار آقا رزا آقا رزا ببین چه قشنگه دم برای چی آوردم؟ عشنگ دختم نه آقا رضا بلند شو بلند شو سوار دو شرخشم از اینجا بری من تا دو شرخ سواری نکردم آقا رضا آقا رضا فکر کن اگه گرفتنمون بگیم چه نسبتی با هم چیکار کنیم اون وقت آقا رضا بلند شو بلنش رو مامونم صدام میکنه خیلی دلم میخواد سوار دوچرخت بشم بلنش رو با هم اینجا بریم اصلا فهمیدی برای چی گلدوزی کردم بلنش رو خودتو لوس نکن هوا سرده سرما میخوری یا این سنگم یخ زده مدر بیچارت واسد قصه میخورا اگه زنده بود دوات میکرد محچه را معصومه را از یاد میکنی آقا رزا به نظره کمشه چه هر های رو نشونده آقا رزا معصومه را نشونده روزین دوچرخش اونا تو جاده های برفی در حال حرکتن و دارن همین جوری تو برف.